اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامة به نام خداوند بخشنده بخشایشگر سوگند به روز قیامت ولا اقسم و سوگند به وجدان بیدار و ملامتگر که رستاخیز حق است الانسان ان آیا انسان میپندارد که هرگز استخوان های او را جمع نخواهیم کرد بله قادرین علی ان نسوی بنانه آری قادرین که حتی خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب کنیم بل الانسان ليفجر امامه. انسان شک در معاد ندارد بلکه او میخواهد آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند یسالو یوم القیامه از این رو می پرسد قیامت کی خواهد بود فا اذا البصر بگو هنگام که چشمها از شدت وحشت به گردش در و خسف القمر و ماه بینور گردد الشمس والقمر و جمع و و ماه یک جا جمع شوند يقول اين المفر؟ آن روز امسان میگوید راه فرار کجاست هرگز چنین نیست راه فرار و پناهگاهی وجود ندارد این آن روز قرارگاه نهایی تنها به سوی پروردگار تو است یون و و در آن روز انسان را از تمام کارهایی که از پیش یا پس فرستاده آگاه میکنند بلیل اینسان و على نفسی انسان خودش از وضع خود آگاه هست ولو القام عذیره هر برای خود عذرهایی به تراشد لا تحرک به لسانک لتعجل به زبانت را به خاطر عجله برای خواندن آن قران حرکت مده این علینا جمعه و قرآنه. چرا که جمع کردن و خواندن آن بر عهده ماست فاذا فا قرانا فاتبع قرانه پس هرگاه آن را خواندیم از خواندن آن پیروی کن ثم این بیانه. سپس بیان و توضیح آن نیز بر عهده ماست چون این نیست که شما می پندارید و دلایل معاد را کافی نمی دامید. بلکه شما دنیای زود گذر را دوست دارید و حبسرانی بی قید و شرط را و آخرت را رها می کنید در یوم ناظره آری روز صورتهایی شاداب و مسرور است الى ربها ناظره و به پروردگارش می و اجوه یوم اید باسره و روز صورتهایی عبوس و درهم کشیده است زیرا می عذابی در پیش دارد که پشت را در هم شکند کلا چون نیست که انسان میپندارد. او ایمان نمی آورد تا موقعی که جان به گلوگاهش رسد من راقو. و گفته شود آیا کسی هست که این بیمار را از مرگ نجات دهد وظن نه الفراق و به جدایی از دنیا یقین پیدا کند والتفت الساخ بالساق و ساق پاها از سختی جان دادن به هم بپیچد آری در آن روز مسیر همه به سوی پروردگارت خواهد بود فلا صدق ولا در آن روز گفته می شود او هرگز ایمان نیاورد و نماز نخواند ولكن كذب تکذیب کرد و رویگردان شد ثم ذهب الى سپس به سوی خانواده خود بازگشت در حالی که متکبرانه قدم برمی داشت فاولا با این اعمال عذاب الهی برای تو تر است شایسته‌تر سپس عذاب الهی برای تو شایستهتر تر است شایسته تر آیا انسان گمان می کند بی هدف رها می شود؟ آیا او نطفه ای از منی که در رحم ریخته میشود نبود سپس به صورت خون بسته درآمد و خداوند او را آفرید و موزون ساخت فجعل منه الذكر و از او دو زوج مرد و زن آفرید اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى آیا چنین کسی قادر نیست که مردگان را زنده کند